بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و والسلام على اشرف الانبیاء و المرسلين وال وصحبه اجمعین اما بعد قبل از اینکه به درس جدیدی بریم فقط یک دوری می‌کنیم روی اون چیزی گذاشت گذشت در بحث قضا و قدر قضا و قدر چهار تا داشت رُکن اولش علم خداوند یک تا رُکن دومش کتابت رُکن سومش مشیات رُکن چهارمش قلب و ایجاد این چهار تا که قرآن و سنت بر اون دلالت دارن خداوند دونسته سپس قلم را خلقت کرده همه چیز را نوشته سپس خواسته و ارادت کرده بر خلق آفن و آخرش هم خلق کرد ایجاد کرد و ما هم یکی از اون مخلوقاتیم که قبلا مقدر شده که باشیم و شدیم یک شبه ای که تو ذهن خیلی ها بزرگ شده بود و نتونستن پاسخی بر اون پا پیدا بکنن و سبب شد خیلی بشن. اون شبه, شبه بحث علم خدا بود آیا خدا میداند از آینده یا خدا نمیداند عده ای که پیروب مجوس نهایی که قبل از اسلام بودن حسن تازه مسلمان ها تازه وارد اسلام میشدن از مجوس با همون افکار دین زرتشت خودشون دین زرتشتیت خودشون وارد اسلام شده بودن قائل به این بودن که خداوند از آینده با خبر نیست چون اگر آینده بزاند و با خبر باشد به این سب خدا میشه ظالم خدا میشه و احریمن خدا میشه و شیطان فعل بد بدارد انجام میدهد از این باب اومدن نفی علم را از خدا کردن چنانچه در روایت عبدالله بن عمر داریم در نقل همه حدیث جبری اومدن به اشکل آیه کردن گفتن که در این شبه پخش میشه ان الامر اونف ام تازه هست جدیده حادثه یعنی خدا نمیداند از آینده خدا از آینده با خبریس الامر اونف جدید خدر همین در حدیث علمان قدریت و مجوز هذه دهی الامه قدریه کسانی هم که نفی قدر را میکنن اسمشون قدریه هست ولی معنیش نفی قدره اسمشون گذاشته شده لقبشون گذاشته شده قدریه خاطر کلامشون در قدر نفی قدرشون علم را از خدا نفت میکنن علم را از خدا نفت می کنن بعدا این فکر را معتصله گرفتن و از واصل ابن و بعد جببایی بعد قاض در کتاب رسول خمسه زیاد پیرامون این مسائل صحبت می کسانی از این فرقه جدا شدن از این این گروه اعتقاد خلاف این را گرفتن اینها نفی علم را از خدا کردن خدا نمی چون خدا نباید ظالم باشه و ما خدا هیچ وقت ظلم نمی کن این آیه را گرفتن و گفتن که علیم بودن خداون عنوان یک سفت اسم فقط خداون علم نداره معتظه نفی علم مطلق از خدا کرده نباید بدانه چون اگر بدونه میشه ظالم واضحه که از واصل ابن عطاق بعد از واصل ابن عطاق میاد جببائی شاگرد جببائی ابول حسن عشعری بوده ابول حسن عشعری اول حسن اشعری جدا میشه از محتذره. خودش معتذری بوده میاد میگه ما تصور نداریم بر اینکه که حلیم نباشه خدا باید, خدا باید حتی صفت داشته باشه از جمله علم اگر علم نداشته باشه چطور این همه مخلوقات را با این همه دقت آفرینش میکنه ممکن نیست خدا نداره چون خدا میداند چون خدا میداند و عالم است در نتیجه ما حالی نیستیم چون خداون علم سابق دارد ما کاری نیستیم چون خدا میداند خدا نمیداند معتزله خدا نمیداند اینها چون میداند اثبات علم را برای خدا کردند گفتن پس چون خدا میداند پس ما کاری نیستیم اهل سنت مدن وسط این فرقه خدا میداند و به ما هم اختیار داده خدا میداند و به ما در یک سری امور اختیارم داده در شکل قیافه به ما اختیار نداده ولی در اینکه ما بریم مسجد و نریم مسجد به ما اختیار داده. مشیت خداوند یه طرف، مشیت ما بنده هم طرف دیگر خداوند اگر اثبات مشیت به خودش میکنه، اثبات مشیت و اراده به بنده هم کرده و ما تشاؤون الا ان الله. و دیگر آیاتی که ما در جلسه گذشته گفتیم، این خلاصه بحثه. فقط شکیره دارم بهتون میگم که تو ذهنتون بدونید که ریشه این فکر از کجا به وجود اومد و چرا به وجود اومد. اصلش شبهه تو صفت علم خدا مي دونات، إن فقط أذبه يا داورى قلته. أما بحثاً، من بحث إحسان. يقول المؤلف رحمه الله المرتبة الثالثة الإحسان. ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قول تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله وتوكل على الذي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يرى حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا اثث في ظن فيه بعد إذن ميات حديث جبرية شر بعضا خايمون أبا لين متر يحصل توزيبيه به این تا مرتبه که مدرین اسلام ایمان از هم ارتبه سبوم احسان اشاره‌ای دران در فرموده خودش به این تا مرتبه در فرموده ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمنهم ظالم لنفسه قالت الأعراب أمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا مؤمن حقيقينا مجددا الدين خيليكي زنامي دون الساني بقاطر همي أعيشيني قياد باقتك أعراب برامون قشتمي ووردان قفتهم يا رسول الله بقري معلوم المؤمن السلام بسم الله بقى يا نقال بقاطر جاهل شون. رسول الله سلموا سلم الله وقلوا بسم الله بقيت بقري بحسيني كأعراب بادي نشينها صحران نشينها الاعراب باشد به کفر و نفاقه به کفر تر بودن به نفاق نزید بودن اعراب بودن چیزی نمیدونستن با هتره هم این نفی ایمان ازشون کرد ولی اسلام را که در حدیث جبرئیل داریم اونم این بفتن با اعمال ظاهری را انجام دادن اونها داشتن عرب ولی که پلی بعدی درایتی که باید انسان مؤمن داشته باشه بر توشید، بر اون ایمانی که نسبت ملاکه داشته باشه یا قیام بران و این علوم را نداشتن. جهلشون سبب شده بود که دیگه ندونن از این مسائل دینی که متعلق به ایمانه. ال ایمان و ان تؤمن بلله و ملائکته و کتوبه و رسوله و یوم الاخره و القدر خیره و از عراب این مسائل, مسائل علمی را نمیدونستن. اینها اعمال باطنی هستن که در ایمان ما تأثیه دارن. خدا نفسی این رو از اونها میکنه اعمالی که متعلق به قلب باطن انسانه کلی این مسائل ایمان هم تؤمن بالله ملکتی هماش برمیگرده به قلب شهادتین که در حدیث جبریل داری و نماز روز روز و روزه گرفتن و حج رفتن و زکات دادن به اعمال ظاهری برمیگرده پس اینجا ثم موردن الكتاب الذين استفینا من عبادنا فمنهم ظالمون نفسی گفتیم کی؟ مسلمانان هنسه اهل اسلام که هنوز ایمان در دل اونها رخنه نکرده و منهم هم اقتصاد اکتفا، اکتفا کردن به اسلام و ایمان به اسلام و ایمان مثل اون عقابی که من نظر رسول گفت رسول الله اگر من نماز پنج دنم رو بخونم کار دیگه نکنم بهشتیم بعد رسول اسد حسین گفت اگر استقامت کردی چنان چه یعنی خاصه ازت بله بعد رسول اسد حسین میگه افلح ان صدق اگر صادق بود اون چیزی که خدا ازش خواسته همون طور انجام بده ان صادق افلح ان صدق راستگار شد اگر صادق این اگر انسان اکتفا بکنه مقتصد بشه دیگه این دیگه مصحف عقوبت نیست اگر واقعا اونطوری که خدا ازش خواسته فرائض رو انجام بده دیگه لازم نیست که چی صحاب قنبل خیرات باشه بیاد صدقه بده تحجد بخونه قبلی و بعدی بخونه از کار بگه اگر اون توری که خداوند برش فرض کرده حق عبادت خدا را در اون فرضیات به جا بیاره این اقتصاده و من هم صحاب قنبل خیرات و کسانی سبقت گرفتن در خیرات در نیکی ها از نمازه نافله از کار از تحجد از صدقه, صدقه دادن کمک نیازمندان این افل احسانه خداوند در این آیه جاری میکنه واسطانمهم سابق هم بالخیرات در خیرات سبقت میگیرند این اصل احسان ودی که کردن در حق دیگران با کمک کردن ونها رسول الله صلی الله علیه و یک تعریفی بر این روک دارد این مرتبه دارد. مرتبه دارد مرتبه احسان مرتبه احسان دو تا شعبه داره شعبه اولش مرتبه اولش دو تا مرتبه داره مرتبه اولش که بالاتر از ماتبی دوم هست رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الله علیه و آله می فرماند ان تعبود الله کانانک تراه ان عبادت الله کانانک تراه این یعنی عبادت خدا بکنیم چنان مثل اینکه داری خدا رو می‌بینید تو انسان که خدا را عیناً چطور این صوفیا ها میگن ما وقتی که نماز می‌خونیم خدا را جلو خودمون خود می‌بینیم خیر نه خدا و نه صفاتش قابل رؤیتن آثار صفات خدا به قابل رؤیتن اینجا منظور اینه چون لازمه ای اسم و لازمه بس اثر خداوند رحمان لازمه این اسم الرحمن رحمته درسته؟ و رحمت خدا همه جا را فرا درفته وسعت رحمته کل شی همه جا را فرا گرفته؟ کجا فرا گرفته آثارش کجاست کجا میبینید اون جنینی که از شکر مادر بیرون میاد خدا لطف در حقش کرده که شیره مادرش را برمکه خدا مهر مادری رو در قلب مادر گذاشته که از خوابش بزنه بچه را شیر بده خدا مهر رحمت را در قلب مادر گذاشته از آثار رحمت خداست در قلب مادر گذاشته بچهش رو نه بیرون تربیتش بکنه بزرگش بکنه بکشونه دهش مناسب بده نه فهم بهش بده از خودش بزنه به فرزندش اینها چیه؟ آثار رحمت الهی که در قلب مادر در قلب بچه در قلب همه ماها گذاشته غیر از اون آثار رحمتی که در بیرون می‌بینیم از اون حیواناتی که مسخر کرده خداوند برای خوردن آشامیدن آثار نعمت خدا را در خودمون ببینیم آثار صفات خدا از اون رحمش از اون لطفش از اون رؤفیتش ان تعبد الله کانک ترا مثل که خدا رو می‌بینی که سبب بشه مشتاقه خدا بشی. شوق به دیدار خدا داشته باشی سبب بشه محبت الهی در قلبت بیاد تعبد الله که کانک ترا مثل اینکه خدا را داری میبینی. یعنی مثل اینکه خدا جلو بته. سر به تعظیمش گذاشتی سر به زلتش گذاشتی دوست داری که کنارش باشی دوست داری که تم به زلت در بیی به همین رسول الله صلی الله علیه و دوست داشتن که کی به نماز بی می ایستن میگفتن ارش نبی ها راحت مرکن. مرتبه شوقه مرتبه کمال محبته نهایت محبته این بالاترین رتبه اسلام و ایمان و احسانه بالاترین که شخص تمامی ارکان را به نهایتش برسونه، به سخفش برسنه سخفش شوقه بلقای پروردگاره یک لحظه نمیخوای از ذکر خدا غافل بشیم میخوای اهل تحجد بشیم میخوای اهل نماز بشیم میخوای اهل صدقه بشیم در همه چیز میخوای پیشی بگ شوق داری علاقه داری که خدا ازت راضی باشه این مرتبه جیه؟ مرتبه بالاترین مرتبه احسان بلاترین درجهش الله که انکتا اگر نمیتونی این مرتبه خیلی برای سخته که واقعا برای من سخته شون اهل دنیا هستیم اهل مال هستیم اهل وابستگی به دنیا و به بازی و لحب و لعب هستیم اگر نمیتونیم این پله یک پله پایینتر از این هم هست که شما بازم امیدی دارتون هست بتونید اونو انجام بدید کجی فالم تکن تراه فانه یرا اینم بازم مرتبه احسانه که اگر نمیتونی با کمال محبت به سوی خدا پناه ببری به سوی خدا بیایید اگر اون مرتبه رو نمیتونی حداقل این مرتبه رو داشته باش که حداقل از عذابش از خشمش حداقل بتأثیر بخاطر همین ما در تحریف عبادت همیشه چی میگیم کمال محبت با کمال ذلت کمال محبت از شوق همونطور که ابن قیم میگه کمال محبت از شوق شوق داری علاقه داری خدا, داری خدا داری از رازی باشه و کمال ذلت از درس شاید خداوند از الناراز باشه شاید خداوند عقوبتت بکنه بخاطر همین خداوند در بحث مؤمنین در متقین القران يقول انهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ومنهم سابق بالخيرات ما تشمل تغير مرتبه احسان وانهم كانوا يدعوننا وإنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا رغبات هم بحث محبه الشوق كذلك ار راحت من کنید میخواد که که نماز بیست آیشتون بولش میگه در شب کجا سر بسجد کنن در مرسل یا رسول الله گناهانم ما قبل توما بعدش خدا بخشید چرا؟ قال افلا اکونو عبدا شکورا مرحله شکره اثار نعمت رو شخص میبینه در خودش افلا اکونو عبدا شکورا اثار رحمت اللهی رو در خودش دیده در همه جا دیده افلا اکونو عبدا پس این مرتبه وره در در کنارشم میترسیدن که شاید خداوند او رو نبخشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که بحث رحمت الهی میشه که عایشه وقتی که سوال میکرده که آیا انسان با عمل خودش یا با رحمت الهی وارد بهش میشه، بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم با رحمتش نه با عمل، صمغ روبرو با عمل خودش نشه. بعد عایشه فرموده حتی شما يا رسول الله با اینها می عبادت و طاعت بود؟ قال صلی الله علیه ان يتغمدنا الله برحمته. مگر إنك خداوند مرا با رحمتش تراب بگیره؟ تراب بگیره مرا با رحمتش. ترس هست یا نیست؟ يدعوننا رغبا و رهبا. اصلا رهب ترس ترس خوف. که انسان بترسه از خداوند، از حاله اگه شاید اعمالش ناقص باشه شاید ازش خشنود نباشه واسه این مرتبه احسان هست که این چنین رسول الله صلی الله علیه و سلم شرحش دادن گفتن و این مثال ها در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلام هست که این قضیه رو توضیح میده ان تعبد الله کانک تراه فان لم تكن تراه فانه يراك و الدلیل قوله تعالی ان الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون خدا بالا دو نفره با دو نفره یعنی چی با دو نفره با دو نفره یعنی همراهشون هست یعنی با اینجا هست یعنی مزدور این معیت معیت نسخ تاییده این معیت معیت نسخ تاییده همونطور به خداوند با موسا و هارون میگوید اینی معکما اسمع و ارا این معیت را خداوند چگونه تعریف کرد باش ندانو ديدان إني معكما أسمعوار كي لازمي إن شندان إن ديدان نصرت و تأييد إن الله مع الذين اتقوا خد وانجوه ديگار إن ومعيتك همراه مؤمنين هسر بسفك ديگار بمؤمن بيات مسال ميزانات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اونایی که استقامت کردن بر روی ایمانشون اخلاصشون توحیدشون تتنزل عليهم الملائک همونطور که در جنگ بعد پیش اومد و اومدن رسول الله صلی نصرت دادن جنگیدن از جفرائیل و غیر از ملائکی خداوند، اومدن همراه با رسول الله صلی اللہ علیہ در صف جنگ جنگیدن شمشیر رو دست گرفتن صحابی میگیدن می دیدم که یک دفعه شمشیر سری می رو میپرون به اونور این مثلاقشیه خدا میتونه کُن فیکون بکنه ولی که معیتش با این اینطوری تعریف میکنه اینو معیت با نصرت و تایید با فرستادن فرشتگانه که بیان از شما دفاع بکنن نه اینکه خود خدا از بالا بیاد و جایی هم اگر نیاز باشه کُن پیاکون میشه ان الله مع الذين اتقوا و هم محسنون متقین و محسنین اهل تقوا اونهایی که می ترسن از خدا رهبا اونهایی اهل... که اهل خوفن اهل ترسن از خدا من متقی هست می ترسن از این بین خودشون و بین خداوند ستری و قرار اصل تقوی از وقایه هست بین خودشون و خداوند من دیواری از ملاحظات ملاحظه می کنن شاید اینکه خداوند برنج ناراحت بشه و خش به بر ما این وقایع را گذاشتن نزدیک به حرام نمیشن نزدیک به اون به که خداوند ناخشنود میشه نمیشن این مرحله تقوا هست و هم محسنون بالاتر از این همراه با اینکه این وقایع این را گذاشتن خیلی زیاد تلاش میکنن در نمافری در احسان کردن به دیگران و در احسان کردن به خودشون با انجام دادن تهجد و دیگر عبادات ها وقوله وتوكل على العزيز العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم تباكل اش يعني اعتماد اشتباه باخذ اسباب اني كتوكل بمعنى التوكل بغيرين كراهه ما تكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تولي تولي كل وقت نمشي عشان سرج سر سجده ميزها طول دوره شهر كل شهر مئات ادم بالتهجد هواش برام مشود توکل اعتماد به خداه با اخذ اسبابه اگر اخذ اسباب نکنیم اگر اسباب را در نظر نگیریم این میشه توکل همونطور که در زمان امام رضی الله عنه کسانی بلند شدن از یمن گفتن که الله خدا بخواد قظمو میرسونه قال هؤلاء و وليسوا متوکلين اینا المتوكل نیست متوكل توکل سبب را انسان نگیره احسان این نیست که انسان بگه که من نمازهای فرضم را میکنم تمام رفت احسان عمل کردن. إحسان إني جسانت خلاف بكونه إحسان بإدعاءني سك بكم من محبة رسول الله ومحبة خدا رضي الله عنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويحفظ لكم دونه قم أنتم بطيب محبة خدا شو منتم بشيء وقم محبة الله رضي الله عنه باتباعني أعمال قاب بكونك وتوكل على على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم بحث رؤيته. الذي يراك دافئا أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الذي يراك. فإن لم تكن تراه أتورا بينك. الذي يراك حين تقوم كسيك ترمي بينك. وقتك ولمجيء. وتقلبك في الساجدين. ان وقتك ترميونا سجدونها. إن هو السميع العليم. كفتين معيات. خداوند در بحث موسی و هارون تعریفش کرد بچین می بیند و میشنود یعنی نصرت میدهد تعییدت میکند خداوند وقتی که این دوتا صفت رو میاره ان و السمیع البری علی یعنی که من میشندم و عالمم میدونم که این کاری که تو داری انجام میدی از کمال محبتت از کمال اخلاصت از کمال شوقت از کمال ترست این کارت ریاکاری نیست خصوصا در هنگام شب که همه خوابن و همه غافلن از درگاه الهی و تقلب و کفسته اجدین رسول الله همیشه در بیانه سجده کنم بود همیشه در حال سجده بود شب ها گفتم که رسول الله صلی اللہ علیه نصف شب و بیشتر از نصف شب به قیام و تحجد میستد خب این مسئله مسئله مهمی هست که خداون میشنود اون راز نیازمون اون مناجاتمون و نیایشیمون با خداوند اون ستایشیمون خداوند میشنوه با خداون علیم است که آیا این با اخلاص با شوق یا نه پس اصلا باید مراقبت خدا داشته باشه باش. خدا ما را می و قوله و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل در شان از شؤن نسی از امور دینی قرانی نمیخونی عملی نمیکنی الا كنا عليكم شهودا استفيدون في مگر اینکه ما شاهد و ناظر هستیم بر اون اعمال شما بر اون کارهایی که شما انجام میدید بر اون نیکی هایی که شما انجام میدید خدا میبیند خدا میشنود خدا ناظر است خدا شاهد است همه این کلمات چیه همه این کلمات متقارب و مترادف چه مترادفان حبشن که یک که در بحث اللغوی داشته باشد ولی کلمات سمیع و باسر بودن خدا یه طرف علیم بودن عالم بودن خداوند به حال ما واقع ما طرفی ناظر بودن اشترف دیگر و شاهد بودن اشترف دیگر همه این مسائل ما در این آیات و این حادثی گفته شد داریم الله مع الذين اتقو این معیت معیت نصرت و تاییده که گفتیم همراه با دیدن و شنیدنه و آخرین آیه‌ای که الان ما خوندیم شهود شاهد بودن خداوند بر ماها دلالت بر ناظر بودن خداوند داره که این ناظر بودن و شاهد بودن با همون دیدن و با همون شنیدنه که لازمش اینه که خداوند ماها را نسرت بده به همین قد اتفاق میکنیم دیگه انشالله بعد حدیث جبریل رو خواهیم کنم و صلی اللہ علیه محمد و علیه محمد